یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان وان صحیح سر به خرامان به چمن باز رسند دل آزرده ما را به نسیمی بنواز یعنی آن جان ز رفته به تن باز رسان ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند یار محروی مرا نیز به من باز رسان دیده در طلب لعل یمانی خون شد یار بان کوکب رخشان به یمن باز رسان برو تایر میمون همایون آسار پیش انقا سخن زاغ و زغن باز رسان سخن این است که ما بیت تو نخواهیم حیات بشنو ای پی چه خبرگیر و سخن باز رسان آنکه بودی وطنش دیده ی حافظ یارب به مرادش در قریبی به وطن باز رسان